بانوی آزری من، در کهکشانهای بینهایت عشق، فروریزش یعنی کوچک شدن و کوچک شدن یعنی فروریزش. بیا تلاش کنیم با تمام توانمان که فرو نریزیم، به هیچ دلیل تحت هیچ شرایطی و حقیر نشویم حتی اگر در نهایت هغارت نیروی هزار خورشید در ما باشد. دیگر در انهنای فضا منهنی عشق خود را با هر چرخشی تطبیق نخواهد داد و تن به تکدی کنجی دنج نخواهد سپرد. آن دو اتاق ساخته شد اما به آشقان وفا نکرد یا کرد خیلی دیر. کدام دیر، کدام دیر عزیز من، برای عاشق زمان وجود ندارد تا حضورش باعث شود که دیر یا مختصری دیر به قرارگاه برسد. من هزار سال است که زیر باران ایستادم، در برابر کعبه، زیر تیغ برهنه آفتاب، در سنگر، به انتظار لحظه معود جاری در تمامی لحظه ها، در تن طوفان، بر برفراز بلندترین امواج و هزار ابزاری است که اعتبارش تنها در یادآوری عمق است نه طول عشق یک قطار مسافر بری نیست تا تو اگر کمی دیر رسیدی قطار رفته باشد و تو مانده باشی با چمدانهای سنگین با تأسف با قطرهای اشکی در چشمان حسرت پویش عشق در خود عشق است نه در گل اتراگینی که به سینه عشق میزنی یا گردن بند مرواریدی که به گردنش میاندازی در بیزمانی عشق حرکت جوهر است و تجزیه ناپذیر از نفس عشق آهای گیل مرد از مه تخیل تا واقعیت گرسنگی نان برای صبح در بیافرا فرصتی برای عشق نیست نه اینکه در بیافرا از ذات عشق خبری نیست عشق به چیزی که شبیه آسودگی است محتاج است حتی اگر در قلب آن آسودگی اعدام جاری باشد بانوی آزری من بیافرا را باید درست کرد نه عشق را ویران و نه آنکه باید بیرون عشق ساعتی به دیوار زندگی کوبید تا هایش از دست رفتن چیزی را به ما آگهی کنند خراب را آباد کنیم نپرشکوه ترین سرسبز ترین و بارآورترین آبادی روح را خراب این واقعیتی است ورای مه جرف مواج و بسیار تخیلی تر از فشردهترین ترین مه عالم بانو حتی در بیافرا مادران فرزندانشان را دوست می دارند و شوهران خوب زنان خوبشان را و آنچه فرصت خودکشی گروهی به ایشان نمیدهد نوعی عشق است چرا که فرصت از زمان سرچشمه میگیرد و در عشق لا زمان جاری است و معجزه در این است که هر جریانی به زمانی محتاج است الا عشق بانو خستگی حق نیست که ما را به انکار حق بکشاند عشق مطلقاً چیزی اشرافی نیست تا بتوانی آن را به دلیل آن که از رفاه برمی آید محکوم کنی عشق فقط رشد روح می خواهد این را باری به تو گفتم باری صد بار لاغر. و به هر حال نشد هیچ چیز آنطور که می خواستیم نشد بله هیچ چیز دیگر تا مدتها شبیه خودش نشد یعنی بود اما نمی گذاشتند بشود کار، عشق، آرامش، آزادی حکومتهایی که معنی دوست داشتن را نمی فهمند نفرت انگیزند و نفرت انگیز ترین چیزی که خداوند خدا رخصت داد تا ابلیس به انسان هدیه کند است که عشق را نمیفهمد. پیله کردند به جان زندگی من. پیله کردند به آن لحظه های مبارکی که تدار و کش را دیده بودیم اول مهر مرا صدا می کنند به مدرسه به ما نوشتند که شما دیگر حق تدریس ندارید از کجا نوشتند از کجا می نوشته باشند من نه سال است دبیر ادبیاتم. اگر این حق را نوشته اید که ندارم پس حق چه کاری را دارم حق مردن را فقط یا تعهد همکاری بده برو مثل آدم زندگی کن راحت و آسوده یا بمیر همکاری؟ خب حاضرم تعهد همکاری با چه کسانی را باید بدهم تعهد همکاری با طرفداران قانون را، مشروطیت را و نظام را. من تعهد عدم همکاری با اجانب و دفاع از حق و حقوق مردم وطنم را می دهم. این خوب نیست؟ گمشو، بی سر و پای انگل، گمشو. اما من تازه عروسی کردم، کار می خواهم. زندگی آرام می آنچه تو با خودت آورده ای عروس نیست، افیط است که از آزربایجان آمده برای آشوب مسلسلکش آدمکش دیوانه عروسیتان هم مسحتی است دستور حزب است همه ما میدانیم اگر سندی در این باره هست به کشیدمانو را من کنید احمق اگر سندی بود که از تو اجازه نمیخواستیم به چیزی مطمئن هستیم که سند ندارد به همین دلیل هم امروز و فردا مثل سگ سر به نیستتان میکنیم میبینید بدون سند بدون رد پا او فرزندی در رحم دارد با لگت میاندازد اگر با لگت بیندازد و من هنوز زنده باشم با لگت لاغل پنجاه تایتان را میاندازم با یکی از همان مسلسلهایی که مدعی هستید همسرم در اختیار دارد ب خانه سخت می گرید. همسرش دخترانش و پسرانش می گریند. اینجا برای شما می ماند. برای همیشه دست به ترکیبش نمیزنم اجاره هم نمی دهم به شرفم وصیت میکنم بعد از مرگم هم دست به ترکیبش نزنند و هیچکس به جز شما توی آنکل به نرود جای آفتابگردان خار که نمیخوا بکارم. یک روز بر می میدانم به شرفم به آبروی حسین حسین برایتان یک اتاق را رو به راه می کنم. فرش میاندازم، تخت میگذارم یک روز بر می گردید میدانم ظالم نمی ماند. به خدایی خدا نمی ماند. می میبینی که مهربانی شمالی چه رنگی است پدر آزریام نامهربان بود بیانصاف خدا نکند همچو حرفی را بزنم اما رنگ هایشان با هم خیلی فرق دارد از سبز مغز پستهای تا سرمهای و سرخ من فقط از رنگ حرف میزنم به شرفم به چشم پدری